اسم ها اسم جاهایی که اسم شهرها، روید ها دهده، مهندسه اسم شهر است، مهندس و از طرفی هم علم وسطش ساکن این ندارد چون عجمی است، وسطش هم ساکن باشه، باز غیرمسلیت کاجو. حالا اگر یه زمان وسطش ساکن بود و علم بود و مهندس هم بود، اما عربی بود، عجمی نبود مثل کلمه هند کلمه هند اسم یک خانوم مؤنثه علم هم هست اما وسطش ساکنه مثل جور وسطش ساکنه اما جور غیر عربیست این عربی است این چطور میگه فلا یتحتم منع و من صرف هند غیر منصرف بودن هند واجب نیست یعنی اگر به ساکن بودن وسطش نگاه کنید میگید این کلمه سبو که منصرف بشه چون عجمی هم که نیست عربیه ولی اگر نه به ساکن بودن وسطش نگاه نکنید به دو علت نگاه کنید بگید دو تا علت دارد یکی تنیست و یکی عربیت دو تا علت که پیدا شد میشه غیر منصرف دیگه ما کاری به چیز دیگهش اگر نظر به دو علت فقط بکنید باید غیر منصرف بخان اگر نظر به ساکن و وسط بودن و بودن این کلمه بکنید باید چی بخونید؟ باید منصرف شکنید بیدیم که از منصرفه امدتاش اثر نمید نظام بگه فلا یته حتی من اصرف هند پس واجب نیست من اصرف هند یعنی میتونید منصرف بخونید میتونید غیر منصرف خلافن لز زجاج برخلاف حضرت آقای سجاج که آقای گفته چی؟ گفته نخیه این واجب هست غیر منصرف زجاج نظر کرده به چی؟ به دوتا علت و گفته واجبه حالا چه وسطش تاکن باشد؟ چه وسطش تاکن؟ نباشه؟ چه منصره؟ چه عجبی باشد؟ چه عربی فرقی؟ نمیکنه دوتا علت که داره میشه غیر منصرف آیه زجاج خلافن زد زجاج بل خلاف های زجاج که ایشون واجب میداند یعنی یتهت هم و پیش های زجاج واجب است خیر منظرک بودن چرا؟ چون زجاج نظر به دوتای علت میکنه میگه دوتای علت داره میشه غیر منظرک وله اندر بذارید باشه <تصفيق>